گرانی عزیزو خوشویست جوان ترین سلاوتن لبه خوشحالین لبشی پنجاوکی خوشنوی کتبی چشتی مجوری هجاری مکریانی حتی نولاتن فرمون لگل من بن هجاری مکریانی بردوامی گیرانوی بسرحهت جانی خویده یشتا لگوندکان دوروبری موسکویو بمشیوه جانی خویمان بوده جاره توا لرادیو زانی من شواف و چند افسریک بدندانی ناصر لقاسم حلق راونه توا قاسم بسرینده زال بوا راجنامه موسکو نوسیان برزنی توانی هره شواف لناوبره شیوئی و خوکوت بون دادگاه گلین لموسل پیک هانی بوا عبدالرحمن قصاب ناوی کان کرده بود دادستانی دادگه پرولیتاری بسطان کسیان لخلق موسیل پش دو دقیقه محکمه بداری چرا برغده حل واسی بود لکرکو گوناو شرکو تبون هر ترکومانی کو کرده که نحزیان برچنگ هات بود به گولیس رایان شابو قتل و آمی که زهور بسامین کرده بود به بو نمونه هر دولاقی نحزیان بدو جیپو بست بود جیپکان هر یک بولایک لیخو را بر یک حلقل شاوا، ایتر قاسم گیوتا ایسکانی چند زمین که لیگرتونو لسر رادیو هجومی با کردون جلال بیتوشی نامی که لبرلین و نردم نامی جودت ملا محمدناوی که شیوی کویبو. بو دلی جلال نزانی چن خوش بو هرچی لیموسل دا دمنگرتو دمنزانی هاولنیا برشق منده دا درکاری منده کرد دمندا دست محکمه دست بجه دیگو بیبن بداریده کن باو شیرینت سوینده که هندم شغل ده مرتجعان هلده استاش لاقم دهشه کچیکی زورجوان و زورناسکو نازده که دمده دی جر دگل اسکر الائبی ده دا دگر را بامنی من حاضرم دگل اسکر بچمه بغدا خویلیتو را کردوم تو پی بله منیش اسکر؟ او که بابو با و زیاده بو نایبه بغدا اوش گوتی، که که بزهیم یامل بغداد زغنشینو یک جره فقیرین او که حمام دیو اوی خوینه شری لازمه فیر سینما هر دو روز مالو حال من ببینی دلی د گوتم افرین بو یزدان پش گره نوم بو بغداد به چند وتی اسکر لیکا بو چی دعوتم بو نرد و نهت منیشوتم کارتم ند یو دعوت چی وتی آی خبرت لشیه قصر لا جركي وزير يكريو جنيه ناوا فتر ل 500 كاسي لا اوتيل بغداد كجمي كي ب 5 دينار دعوت كردبو منجوتم او دګوت زغنشین موزور روتوراجالم راجالم كابوتي بالي بالي او ساوابو استا وایا اسکر خل منه تيګشتم زغنشيني كريكاري سادهي کارخاني جګره خو ابو رخصندو بغات موسكو بو ته هاجي ولای شويان وقدر دستی بکونی پول دچوه ایستا بود او پی او نووشینراوه ماموستا اسکر هستم دکرد روسکان هیچ خوشیان نه نژاد زر اگر فیلم چینی با کزګل نامو کنه دچوه تماشاې چوار چینی ژنا یکی کو یک ویټنامی لبون کور هرچن هرچند بون استراحت همیشه سریان بسرت بوبو نه اند پرجا حوالهتی کسب کن ویټنامیا کا لعکاسی دزانی من ک لعکاسی دزانی پارون کو هوالانی اساساً جاد دبود درمانو و فیلمی نجراي خوان بینن وق دکتری ترانی وقتم بود دادنن اگر روزی باران بی فلان ساعت باین چب دکم با وا زور ممنون دبون کره ویتنامیکا به دوربینو فیلمی خوی اکسید کرد با کاغذی خوی باین چب دکردن لجوابی من دا که با وک من نکی وتی من زردم تو اسم ریچ هورا شی بوح علاش هر دکم لیم رازینی نو لآسایشگاه در جوری تاریک و ماشین اکس گوره کردنوی تیدابو فتحیوتی لسر بابکی خورم دینی شتیکم نوسی چاب کرا ایستا دمویشتی که لزیاد کم کدیسان بوم چاب کنوا اتاوریزو کاروان با کردستان در برو بغداد روا توشی چند جه به بوم بونوسی دیگوت آی ناویگنه دار آفان دول سیریان چند پیگرینگ بوا بایان چاب کردو. دکتر رحمانی حاجی باغر نامی که رسمی لولوشین نو که لکومیته مرکزی حزب داو بسر سیاست روجلات نو راست را دگیشت بوهینم. نسرابو تکای حالو احوال عراقمن دا مقال یک دا بوب نوسا. با کردی نوسیم دای دکتر با روسی ترجمه که وطی کردیه که زنم بریه فارسی با کد مفارسی وطی بخواه روسیه نه زنم سلماسی ترجمه کرد لما جلی عدبیت و جینده چاب كرا. چوار هزار روبلیان بو ناردم. بلام لجاتی نوی نوسر ولوشین دنرابو زورین لأسوار نوسرانی روز به عربی بو هنه بون، لنویندان ناملک شعرکی مایاکوفسکی هبو لذاتم لخوین نوکی برد. مثلا هور لپاتولده بلا موقسی سیر بو، وقت زیقی مرده چو، دوام کرد فارسی که فرخ یخی نه بو خو چونه او کبره د بوق ګوګلو ماکسیم ګورګیو چیخوف او کیوکی حساب کرا بیا زیاتریش لا هرچون ک شانازی شانازي دکم کلاوی که کومونیستم او رزیلی جیراو کوټل لا کوټل همونو سره بنو بانکان روسي برستره رنگیشه منوګ زلامیتی تی نه گشت بمو عقلم هر اوندی برکردیبه روج یک دو زلام به باریک دوربینو زپتی سو تو او جورکوتن اوتیان 6 شتێک بڵێ لە ڕادیۆدا بڵاو بکری تەوە منیش وتم دەبێت شیعری گونمسەم سەی وەرنوا سەی لەم پیدا بو نوا وتم شیعراکم کوردیە وتیان تو فارسی یان عەرەبینەزانی وتم لە فارسی دا ملوانم لە عەرەبی دا تام لە دنیای آدانیە وانی شوتیان جا چون کە کوردی جیگین ڕادیۆ موسکو دانیە بە عەرەبی تەرجەمە ک وتم بەرا من کردم بکر دی اتان مبارکه دنک کس من لکس هرچی کنه جورا و من جمن کرد فایده نبود روی نوا دوای دوروش هات نوا وتیان باشا باشه بکر بله وتم آخر پیشکی اخیه کی پخش نیشم بونوسی وا که خالق داشت شعر کبگا و, و تیان باشه آیش بله شرک لرادیو بلاو کرایوا تجیشتم بودی او هوا لانم کدهاتم با موسکو با عربی قصان دکرد و بکر دی قصان ندکرد دعوت کرامه سفارت عراق ک جژن د مزرانی کودتابو بجلکی کوردی و چوم جلکی کوردی سهره او اندم لیکوبونو او اندین عکس گرفتم پرسیال لیکردم ک سفیر عراق عبدل وهب محمود وتی براستی تو سفیر کی لمن چاکتری بو عراق نه سندن لو جژن دا کورچ عراقیم دی بنوی حمرچ ک د انود لو سورانی بنوی کوردو کوردستان جوته هل ده خاتو حد بلما روم لیور جرا گرییا وتی حجر راست من د ملتی ملتي خومبو بلهم همي شد لم بو كرد و او كردستان سوتاو نه ميرا و راستي د خومبل پيمګود برادر تو زور سر خوشي سبي لبير د چته تو پشيمان دي بي توا ک باسي خوشي وسي هشت منګ لګرت سن زور به خوشي رمورد حتمه موسکو له سر حساب نو سران الا اوټيل روژک بردیان ما بنکی یکیتی نو سران سروگ نوی می دوی دوف بو سی سال دبو ندبو پیاوی که یک جر رو خوش قصه خوش زور زیرک بو لو مزلیسه دا نینا عربی زانکی حوال جر لفرگ بوم لگه بو تورسون زاده مشهوری تاجیکا زور خوشی و باشی دگل کردم گوتی من کردم همیشه خوش ویستون ویستاش هر زورم خوشده وین من چون عراقیش وا تازه گر رومتو گوتم میرزا توکه ده زنم تو که هنده کردت خوشده وید چوی باسرانت چوی سلیمانی و حولیر لبغداش زور نوسر و شاعری کورد بون هیچ چیاند ندید شیو یکا نهانهشت خوش ویستکاند ببینی عراق و رقصی بغده و باسران لکرد خوشتر بو گوتی او من بمن دبی عذرم لی میدویف لنینه پرسی دلین چی؟ ایوش وی تی نه زنم به من به عربی بونینام شره ده میدویف وی تی تو رسن زده تو لو کاری خود بخوازی یان دبو نلی کردم خوش دوه یان دبو بچیه کردانش حقی هجاره هر لو مجلسده یک پرسی تو کومانیستی؟ وتم تیم نخیر ناسیونالیستم دی سان میدویف هجاری ناسیونالیستم پیل زور کومونیستان باشتره، شرعه او زوری هاوار با چینی چو سوا کردوا، شلخو فیش کومونیست نبوا و پیوی چکی شد، زور جریتر می دیو یوفم دیتاوا جری کلی پر سیم چوی بازار پیچون بو و تمش زور گرانه گوتی یعنی حیو گرانه برا ل زمان دو سال دوای شر 풀 لیرفانکن ده بو بالام هیڅ نه بو پی بکرین شکر بککه استا حیو لکو پی دو جود گوروین برکوت بو ل بازار رشف فروشتم من کا حزبی بوم ناچار چوم اقرارم بگونه خر جاریک پرسیم توپیه ویکی زور زیرکی پیکنی گوتی جا بود بجیار از موا ازمون کلاسی ششم دابو فراشی مدرسه گوتی هرکز دو روبلم بلم نداتی کارنامه نیشان ندم به هزار گیرو بدکای دایکم دو روبلم بلم سند سندو بردم لکارنامه کم دا حوال بوم بلام حوال لتیشکاوکان لنم رکم هنان دا لحموان لپیشتر بوم دو زلی جانانم لباوکم خوارد کدوم روبلکهای با خسارت شو؟ چنانکه نوسر و جولگش شعرکانی منی بررسی ترجمه دکرد، اولیش واردین مستفاع سلماسی. وقت قبلم بودجی ولاتی شوروی نیویل نوسر و شاعرو، هنرمندانو و بتابتی، هنرمندانی سرشنو خارز ذکره. زریکی کیسه آوالایه. به هر direct کل تابیتک بدر حساب ذکری چهارده روبلیان داده بخوانیم، چهارده روبلش وریار واردگرد. پول بومند باري پتر ل 6000 روبل نرخ شعر مسرای پخشانم کېږيستم چپخانیک بکرم سلماسی زوري درکو دیوان کرد و چې ان بو درو به روبل انفراشین لوی نه همیت بوین 10000 روبل بو به هزار ډالر ګوریموه به شرطه کله بغداد بمدنی او هم پولا کله روسیا نبینا چې چلیبکم ملمنه ل تخشان پخشانی دعوتی آشنایان پیدا کرد روج میډوډوفو جنکیم دعوت کرد هزار و دو سبت روبلم لجایمک دا بجارد، سررای پولیز وریش حقی اوتیلو خواردنو سفرم لسرنو سرانبو، اوتیان، دمانوی بدگیارین، کرخانی ماشینسازی و امانت نیشاندین، وتم هیچ چی تیناگمو نشتم، هزم لی موزو نقاشی هنرمندانو هیچی تر، بزور موزان دا گرامو، راستی زورم کیف پیده هاتن، لی اداری روشنامی پرابده جوانانوه، دوام لیکره که مقاله درباره اشتی بنوسم، مقاله که وابو لمیصری قدیم دا کسانات لشاران پریسند بو، ورزیران و ماسی گران دهاتن کریکاری بو شاران گنم و ماسی زور لکمیدا دا، کهینان آینی و نو خلق کوتن، که باب ایوه نازانن، دنیا لسر پشتی گاو ماسی بنده اگر گنم و ماسی برهم نهینن، دنیا تیگده و خلقی شار لبرسانو و بیگوشتیان دمرن کارناسانی دنیا دلین، او سربازی لجپه شرا، برهمی یازده کارگرده خوا، خوشی یکیک، او دوازده کس لوانی گنمو گوشت برهم دینن لکارده کون. او دم لسر باسی عشتی و خراپی شرد دوابون، مقالکم لروجنامکه دا چپ کرا، دعوت کرم با اداره، سر نو سر زور من تلفون و تلگراف بو هاتوا، دلین شش منگلو مقاله به سر، لسر عشتی چاپ نکراوا، تو نو سر یکی زور باشی، گوتم حالا من وسریا کام هرناو منیا بلان فرق اویا لیرابو نوسرن فکر د من بو خون فکر د کمو دینسم پولی زور د دن بنوسر پیدلن لفلان بازده او کلمه نزیاد نکم نه کم نوسر بو پولکی خو خواتی کاربدس لی رازی به نگ بو خویل نوسینه کی خوئی بو نمونه کتابکم به عربی خوندوتوا 400 صفحه د داستان روسی ترجمه بناوی کناری رونق هموی په پوختی باسی ګل کې کې رسنه کله خوځه به کله خوځې فروشتو پاشان لسند توا اگر من ترجمه من فکر دایم په صحه یک تو دمو لمرونه سکان منی په احمقانه بو بلام ګوتی تکایا شتی تریش من بو بنوسه ګتم من لبنی مقاله کنوسيب حجار شاعر کرد یو نو حجار شاعر عراقي یعنی چی ګوتی و من زنیواد په خوښه من جوتم ما ماست ای بارز تو بازار بلی شوتن باب کرده من بچم سنجود باب کردم بلی موامزانی سنجود پی خوشت دار نه خیر لناوی کرد خود پارست تو ایتر بوته نانوسم دگل سلماسیونی نا جلککی وریار شرکانم چون ندیدنی نازم حکمت پیرویی بالا برزی چارشنا چاوشین موذرد هتابله خوین شدیم لسر خطی پشت لسر تخت رکشابو نخوشی دلیبو نده بوایا وتم زربدا خوم او د لیکه لغوشه ک وردیته دای جانک غوتی آی اوقس شاعرانه کلناوند دوم د نه کرد و عربی و کومونیستکانی سوریا لیت رازی نین اویش هر لسر او خسانی که باسی کردکی و تی چم پیدلین و تیم والا چت ارز دلین های لدائی نازم حکمت بین بالیشتی کیوا زور پید کنی گو تی کرن نکرن با جنیو بدن هرکس بتوانی و یاری دی امگل بست از مان لیا قوم هاو نده نبیب خوی بلیبنی بم خبرت خوشا دو جن خزمت او تا فراوین نخوی نبیبروی، او سا موزه خوامت نیشان دادم، دوی فراوین بسبره سبره پیش مند کود، هرچی لهم دنیا و دیاری کن بوه نبو، موزه که لیپیکی نبون، گوتم، استاد، دفرموی کردم خوش دوی، ادی کوشتی که کردانه؟ گوتی، آی چند بپلی، وره، لسر تاقیق مخمری سوز رخ رابو، جوت کلاشی هورمی چن کوچکو اسکوی دار، چند سبیلی کلک و گلین زور با جوانی ریز کرابونو نسرابو. دیاری برا کرده کنم. گوتي بر لوال تو پر سمبیسته بوم که کومونستان سوریا مقاله که من یان ترجمه کرده بوم. نایو کرد و کردستانیان در اوشته بوم کمن نوسی بوم. اکس یکی خویو چند کوچکو گلدانه که داری زور جوان که دزگاری امریکای لاتین بود با دیاری دامه. که لبغدا وک عزیزترین یادگار حلم گرته بون. که ویست من بروین گوتی دونو مایشم لی موسکو نیشند دره چند بلیتت دوی؟ نینا گوتی دوازده گوتم استاد او جولکی دیو بی فروشتوا لسه پترم نعوی گوتی نه دوازده تهر ده دمی تلفونی کرد باشنیک پیوت چونی؟ لچه هود مازدکم دوازده بلیت بناوی هجار بنیره روی ده من کرد اوه دبیر جنان بدوینی فیر با فیر دوای هر خوی با خوابیم وای لمن شیطان تری ده زانی چون خلق بدویانی چون ما تماشا یک یک دنمایش نمکانی بر راستی زانی بگرانی عزیز و خوشویست و دوستان و حوریانی دونیا اکتب لیره دابم شویه حتی نکوتایی بشی پنجاویکی خوین نو اکتبی چشتی میجوری هجاری کوریانی تا بشی کترو شویکی ترپیتان دگینا و شوتن آرام جیانتن شد